مصنوی معنوی مولوی برنامه نوید و بقیه نوشتن آن غلام رقعه با طلب اجری رفت پیش از نامه پیش مطبخی کی بخیل از مطبخ شاه سخی دور از او و از حمت او که این قدر از جریم آیدش اندر نظر. گفت بهر مصلحت فرموده است نه برای بخلو و نه تنگی دست. گفت دهلیزی است والله این سخن، پیش شه خاک است هم ذره کهن مطبخی ده گونه حجت برفراشت، او همه رد کرد از حرسی که داشت. چون جری کم آمدش در وقت چاشت، زد بس تشنه او سودی نداشت. گفت قاصد می کنید این ها شما گفت نه که بنده فرمانیم ما این مگیر از فرع این از اصل گیر بر کمان کم زن که از بازوست تیر ما رمایتا از رمیتا ابتلاست بر نبی کم نه گنه غون از خداست آب از سرتی راست ای خیره چشم پیشتر بنگر یکی بکشای چشم شد از خشم و غم درون بقعه سوی شاه بنوشت خشمین رقعی اندرون رقعه ثنای شاه گفت گوهر جود و سخای شاه سفت کی بهر و ابر افزون کف تو در قضای حاجت حاجات جو زانکه ابر آنچه دهد گریان دهد کفه تو خندان پیاپی خان ظاهر رقعه اگرچه مد بود بوی خشم از مد اثرها می نمود زن همه کار تو بی نور از تو زشت که تو دوری دور از نور سرشت رونق کار خسان کاسد شود همچون میوه تازه زو فاسد شود. رونق دنیا برارد زو کساد زان که هست از عالم کون و فساد خوش نگردد از مدیه سینهها چونکه چون که در مداه باشد کینه ایدل از کین و کراحت پاک شو وانگهان الحمد خان چالاک شو بر زبان الحمد و اکراه درون از زبان تلبیس باشد یا فسون وانگهان گفته خدا که ننگرم من به ظاهر من به باطن ناظرم حکایت آن مددا که از جهت ناموس شکر ممدوح می کرد و بوی اندوه و غم اندرون او و خلاقت دلق ظاهر او می نمود که آن شکرها لافست و دروغ. آن یکی با دلق آمد از عراق باز پرسیدند یاران از فراق گفت آره بود فراق الا سفر بود بر من بس مبارک مجدور که خلیفه داد ده خلعت مرا که قرینش باد صدمت و سنا شکر مدها بر می شمارد تا که شکر از حد و اندازه ببرد پس بگفتندش که احوال نژند بر دروغ تو گواهی می دهند تن برهنه سر برهنه سوخته شکر را دزدیده یا آموخته کو نشان شکر و حمد می تو بر سر و بر پای بی توفیری تو گر زبانت مدح آن شاه می هفت اندامت شکایت می کند در سخای آنشه و سلطان جود مرتو را کفش و شلوار نبود گفت من ایثار کردم آنچه داد میر تقصیر نکرد از افتقاد بستدم جمله عطاها از امیر بخش کردم بر یتیم و بر فقیر مال دادم بستدم عمر دراز در جزا زیرا که بودم پاک باز پس به گفتندش مبارک مال رفت چیست اندر باطنت این دود و تفت سد کراحت در درون تو چو خار کی بود انده نشان ابتشار کو نشان عشق و ایسار و رزا گر درست است آنچه گفتی ما مزا خود گرفتم مال گم شد مایل کو سایل اگر بگذشت جای سایل کو چشم تو گر بود سیاه و جانفضا گر نماند او جانفضا از رق چرا کو نشان پاک بازی ای تراش بوی لاف کج همه آید خماش صد نشان باشد درون ایسار را صد علامت هست نیک کار را مال در ایسار اگر گردد تلف در درون صد زندگی آید خلف در زمین حق زراعت کردنی توخمهای پاک آنگه دخل نی گر نروید خوشه از روزات هو، پس چه واسع باشد ارز الله بگو چون که این عرض فنا بی نیست چون بود ارز الله آن مستوسیه است این زمین را ریع او خود بیهد است دانه را کمترین خود حفظد است حمد گفتی کو نشان حامدون نه برونت هست اثر نه اندرون حمد عارف مر خدا را راست است که گواه همد او شد پا و دست از چه تاریک جسمش برکشید و وستگ زندان دنیایش خرید اطلس تقوا و نور معتلف آیت همدست دست او را برکتف و رهیده از جهان آریه ساکن گلزار و اینون جاریه بر سریر سر عالی همتش مجلس و جاه و مقام و رتبتش مقعد صدق که صدیقان درو جمعه سرسب زند و شاد و تازرو همدشان چون همد گلشن از بهار صد نشانی دارد و صد گیر و دار بر بهارش چشم و نخل و گیاه گلستان و نگارستان گواه شاهد شاهد هزاران هر طرف در گواهی همچو گوهر برصدف بوی سر بد بیاید از دمت و سر و رو تا بد لافی غمت بوش ناسانند هازق در مساف، تو به جلدی هایوهو کم کن گذاف تو ملاف از مشک کانبوی پیاز از دم تو می کند مکشوف راز گل گلشکر خوردم همی گوی و بوی می زند که یافه مگوی هست دل ماننده خانه کلان خانه دل را نهان همسایگان از شکاف روزن و دیوارها مطلع گردند بر اسرارها از شکاف که ندارد هیچ وهم صاحب خانه ندارد هیچ سهم از نبی برخان که دیو و قوم او می برند از حال انسی خفیه بو از رهی که انس از آن آگاه نیست زانکه زین محسوس و زین اشباه نیست در میان ناقدان زرق متن با محک ای قلب دون لاف مزن مرمهک را ره بود در نقد و قلب که خدایش کرد امیر جسم و قلب چون شیاطین با غلیزی های خیش واقفند از سر ما و فکر و کیش مسلک دارند دزدیده درون ماز دزدی های ایشان سرنگون دم بدم خبت و زیان می کنند. صاحب نقب و شکاف روزنند. پس چرا جانهای روشن در جهان بی خبر باشند از حال نهان؟ در سرایت کمتر از دیوان شدند روحا که خیمه بر گردون زدند، دیو دزدانه سوی گردون رود از شهاب محرق او متعون شود سرنگون از چرخ زیر افتد چنان که شقی در جنگ از زخم سنان آن ز روحای روحهای دلپسند از فلک شان سرنگون میافگنند تو اگر شلی و لنگ و کور و کر، این گمان بر روحای مه مبر. شرمدار و لاف کمزن جان مکن که بس جاسوس هست آن سوی تن. در یافتن طبیبان الهی امراز دین و دل را در سیمای مرید و بیگانه، و لحن گفتار او و رنگ چشم او و بی این همه نیز از راه دل که انهم جواسیس القلوب فجالس هم به صدقه این طبیبان بدن دانشورند، بر سقام تو ز تو واقفترند، ز قاروره همه بینند حال که ندانی تو از آن رو اعتلال، هم ز نبز و هم ز رنگ و هم ز دم بو برند از تو به هر گونه سقم، پس طبیبان الهی در جهان چون ندانند از تو بی گفت دهان همز نبزد، همز چشمت، همز رنگ صد سقم بینند در تو بی درنگ این طبیبان نواموزند خود که بدین آیاتشان حاجت بود کاملان از دور نامت بشنوند تا بقعر باد و بودت دردوند، بلکه پیش از زادن تو سالها دیده باشندت تو را با حالها، مجددادن بایزید از زادن ابوالحسن خرقانی پیش از سالها و نشان صورت او و سیرت او یک با یک و نوشتن تاریخ نویسان آن را جهت رسد. آن شنیدی داستان بایزید که از زهال بلحسن پیشین چه دید روز آن سلطان تقوی می گذشت با مریدان جانب صحرا و دشت بوی خوش آمد مرو را ناگهان در سواد ری ز سوی خارقان هم بدانجا ناله مشتاق کرد بوی را از باد استنشاق کرد بوی خوش را عاشقانه میکشید. جان او از باد باده می چشید کوزه کو از یخابه پر بود، چون عرق بر ظاهرش پیدا شود، آن ز سردی هوا آبی شده است، از درون کوزه نم بیرون نجست. باد بوی آور او را آب گشت، آب هم او را شراب ناب گشت چون آثار مستی شد پدید یک مرید او را از اندم بررسید پس بپرسیدش که این احوال خش که برون است از حجاب پنج و شش گاه سرخ و گاه زرد و گه سپید می شود رویت چه حال است نوید میکشی بوی و بظاهر نیست گل بیشک از غیب از گلزار کل ای تو کامه جان هر خود کامه هردم از غیبت پیام و نامه ای. هر هردم یعقوب وار از یوسف میرسد اندر مشام تو شفا قطره برریز بر ما زانسبو زان زانگلستان با ما بگو خو نداریم ای جمال مهتری که لب ما خشک و تو تنها خوری ای فلک پیمای چست چست خیز زانچ خوردی جرعه بر ما بریز میره مجلس نیست در دوران دگر جستو ای شه در حریفان در نگر که توان نوشید این می زیر دست مای یقین مرمرد را رسواگر است بوی را پوشیده و مکنون کند چشم مست خیشتن را چون کند خود نه آن بوی است این کندر جهان صد هزاران پردش دارد نهان پرشد از تیزی او صحرا و دشت دشت چه که از نه هم برگذشت این سر خم را به کهگل در مگیر کین برهنه نیست خود پوشش پذیر لطف کن ای رازدان رازگو آنچه بازت سعید کردهش بازگو گفت بوی بل عجب آمد به من همچنان که مرنبی را از یمن که محمد گفت بر دست سبا از یمن می آیدم بوی خدا بوی رامین می رسد از جان ویس بوی یزدان می رسد هم از اویس او از اوویس و وزقرا بوی عجب مرنبی را مست کرد و پرترب چون اویس او از خیش فانی گشته بود آن زمینی آسمانی گشته بود آن هلیلی پروریده در شکر چاشنی تلخیش نبود دگر آن حلیله رسته از ما و منی نقش دارد از حلیله نی این سخن پایان ندارد بازگرد تا چه گفت از وحی غیب آن شیر مرد؟ قول رسول صلی الله علیه و سلم، اني لا و نفس الرحمن من قبل اليمنه گفت زینسو بوی یاری میرسد کند در شهریاری میرسد بعد چندین سال می زاید شهه می زند بر آسمانها ها خرگهه. رویش از گلزار حق گلگون بود از منو اندر مقام افزون بود چیست نامش؟ گفت نامش بلحسن هلیاش وا گفت زبرو و زقن، قد او و رنگ او و شکل او یک با یک وا گفت از گیسو و رو. هلیه های روح او را هم نمود، از صفات و از طریقه و جا و بود. حلیه تن همچو تن آریتی است دل بران کم نه که آن یک ساعتی است حلیه روح طبیعی هم فناست حلیه آن جان طلب کان بر سماست جسم او همچون چراغ بر زمین نور او بالای سقف هفتمین آن شعاع آفتاب اندر وساق قرص او اندر چهارم چار تاق، نقش گل در زیر بینی بهر لاغ بوی گل بر سقف و ایوان دماغ مرد خفته در عدن دیده فرق عکس آن بر جسم افتاده عرق پیرهن در مصر رهن یک حریس پر شده کن آن زبوی آن قمیس برنبشتندان زمان تاریخ را از کبابا راستندان سیخ را چون رسید آن وقت و آن تاریخ راست زاده شد آن شاه و نرد مالک باخت از پس آن سالها آمد پدید بلحسن بعد وفات بایزید جمله خوهای او زمساک و جود آنچنان آمد که شاه گفته بود لوح محفوظ است او را پیشوا از چه محفوظ است؟ محفوظ از خطا نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب وحی حق و الله و به از پی رو پوش آمه در بیان وحی دل گویند آن را صوفیان وحی دلگیرش که منظرگاه اوست چون خطا باشد چو دل آگاه اوست مؤمنا ینظر به نور الله شدی از خطا و ساو ایمن آمدی <تصفح>